خانم زمانی عزیز سلام زحمت این تابلا با تو بوده ایده خیلی قشنگیه و این یادگاری خوب با فکر شما برای بچه ها خواهد کند از روزی که آست به من زنگ زد با شما رو برای مدیر روابتون می انتخاب کرد یک سال و سه چهار ماهی میگذره و این یک سال و سه چهار ماه پر فراز خیلی زود گذشته اما با همین ویس و همین مکالمه میخوام بدونید که خیلی تغییرات بزرگی توی واحد روابتون می و سب و سیاقه کار کردن روابتونم اتفاق افتاده اما از طرفی هم میخوام بدونید که هنوز خیلی جای کار داریم هنوز خیلی راه های نرفته داریم که باید دونه دونش رو با هم دیگه بریم و امیدوارم که تو همه این راه های نرفته حضور شما رو حس کنیم هر روز پر تر و قویتر از همه مهمتر برای من مسئولیت قذیری و سرعت عمل شماست که باعث افتخاره و این رو فکر می کنم که یه بی زمینه از قبل و توی یک سال سه چهار ماه تو نوین الماس خیلی بهتر یاد گرفتین روابتونمومی و سبک سیاق امروز نوابتون شما باشین و چه شما نباشین توی روابتونمومی نوین الماس مدیون شما خواهد بود از زحمت هایی که برای گرفتن امتیاز برای بچه هاتون می کشین تا خرید لوازم تا خیلی از اتفاقات بزرگی که توی این یک سال و افتاده به همت و پشتکار شما بوده امیدوارم که این همت و پشتکار همچنین سالهایی گذشته ادامه داشته باشه و این شما باشین که قلعه روابط مومی نوبین انماس رو فتح کنید و به همه چی توی این قضیه، برسین سپاس از حضورتون و سرزندگی و قبراقی رو براتون آرزو می